اجاب نقاب زدن اگر یک اگر یکی نقاب بزنند یک لای نقاب پشت بیان پشت باشد بهتر است یا اصلا نقاب نزند بهتر است بعضی خانمات دیگه خانم‌های دی، دیسکوچ بالا این خانم‌هایی که الا دیگه مو کار میکنند عجیبند نقابم با می میزنن نه نقاب خاطر آرایش نیست بخاطر خاطر نقا میزنید تا اون جلب توجهات کم کس توجه نکنه اینقدر آراش غلیز میکنن چشم ها رو آراش غلیز یک رنگی میزنن تا که سیاهی در سفیدی نقش بندن. و یک لای پشت پشت بیانده که پرپر بکنه که از دور هم ببینن که الان یک کلاق سیاه در دریا موج میزنه از دور این درست نیستم نقا بزن. جواب تو راحیت بکن اما للاهیت باشه به خاطر خدا باشه چون بعضی ها حتی حتی بعضی نمیگه همه رو بعضی ناراحت بشن همه رو نمیگم اما حرف حقو باید گفت حرف حق باید گفت از حق گریزی نیست و تباید فرار هم کرد بعضی ها اون عیب صورت خود را در نقامی کشونند این صورتشا عیب باشه جای در صورت ای باشه زیوانه باشه اما نقامی میزنه فقط همون سفیدی روی چشم ها رو بیرو میگه تا که کسی طرفش مائل بشه کسی رو طرف خودش بکشواند اینجور افرادی هستن از این نراحل نباشی هستن چنی افرادی نقامی زنی چه از کلن با دوره و پیراهن بالا زانو زان رو هست ناشالله رشه بیرو داخل بازار ای و صورتو جا باید صورت رو می پوشونن جای دیگه نه کامل باید زینت شما پوشیده بشه زینت ها رو بی پوشانید پس این اگر این لایی که پشت می اضافه اونو بر بگار، چه پشت می اندازید اگر آقا میگه الان این هست چشمه رو میگیره، خب برشی دار رایت بکن اینکه که چشمه ها رو یک سرمه میزنن یک رنگی هم می زنن سفید کنندی غلیزی نکامی زنند که هر کسی از یک کیلومتر هم ببینه باید دو کیلومتر دنبالش بره. اینها کار درست نیست. این واقعیتند. اینها واقعیتند. همه همیت تو هم میدون واقعیتن اما شاید ناراه دنم بشه اینجوری رخ دارم میگم. این واقعیتی که ها بخاطر اینکه افراد طرف خودشون جذب کنه این کارو انجام میدن. این کار کار غلبتیه. کار ما کار خدای نیست. برای کسی جایزه یک چشم آر کنه که واقعا مشکل داره. اما مشکل نیست علا چشمه رو بپوشانید چون خیلی ها اصلا ایبتور نبیبینه فقط عاشق چشمهایش میشه و دنبالش راه میره. پس این که اصلا نزنن بزن اما خوب بزن این که نشو اصلا نزنیم